درس خواندن سفره نوروزی گستردن سفره نوروزی در هنگام تحویل سال و گزیدن هفت چیز گوناگون و چیدن آنها روی سفره از رسمهای ویژه و عمومی در نوروز بوده است امروزه هفت چیزی که روی سفره نوروزی میچینند بنا به مختزیات اجتماعی فرهنگی و اقلیمی در نواحی مختلف ایران فرق میکند نخستین حرف نام هر یک از این هفت چیز سین است مانند سیب، سنجد، سمنو، سرکه، سماق، سنبل و سیر در برخی از روستاهای فارس و خراسان سفره هفت میم و سفره هفت شین از هفت گیاه و میوه میز ظاهرا رسم گستردن سفره در نروز و چیدن هفت سین بر روی آن بازمانده رسمی کوهن است روی سفره نوروزی افسون بر هفت خوراکی، آینه، لاله، شم، کتاب آسمانی، تنگی پر از آب با ماهی های قرمز، چند تخم مرغ پخته رنگ شده، نان سنگک یا تافتون، اسفند، چند سکه و مقدار شیرینی هم میگذارند. هر یک از این چیزها و خوراکی در فرهنگ ایرانی معنا و مفهوم نمادی دارد از میان متون کلاسیک نصر فارسی، مرزبان نامه مرزبان نامه از متون مشهور فارسی است که به شیوه کلیله و دمنه نوشته شده است. سعد و وراوینی این کتاب را از گویش تبری باستان به پارسی دری ترجمه کرده است. روزی مشاهده می کرد که مار از سوراخی در باغ آمد و زیر گلبنی که هر وقت آنجا آسایش دادی پشت بر آفتاب کرد و به خفت از آن بیخبر که شش جهت کعبتین تقدیر از جهت موش موافق خواهد آمد و چهار گوشه تخت نرد اناسر بر روی بقای او خواهد افشان تا کاران غالب دست بدانند که با فرو دستان مظلوم به خانه گیر بازی کردن نامبارک است و همان ساعت اتفاقا باغبان را نیز به استراحت جای خود خفته یافت و بخت خود را بیدار موش بر سینه باغبان جست از خواب درآمد. آمد موش پنهان شد دیگر باره در خواب رفت موش همان عمل کرد و او از خواب بیدار میشد تا چند کررت این شکل مکرر گشت آتش غذب در دل باغبان افتاد چون دود از جای برخاست. گرزی گران و سرگرای زیر پهلو نهاد و وقت حرکت موش نگاه می داشت موش به قاعده گذشته بر شکم باغبان وسبی بکرد باغبان از جای بجست و از قیز حالت زمام سکون از دست رفته در دنبال می و او به هروله و آهستگی می رفت تا به نزدیک ما رسید همانجا به سوراخ فرو رفت باغبان بر مار خفته ظفر یافت سرش به این فسانه از بهران گفتم تا بدانی که چون استبداد زعفا از پیشبرد کارها قاصر آید استمداد از قوت عقل و رزانت رأی و معونت بخت و مساعدت توفیق کنند تا قرص به حصول بپیوندد و فلمصل اتجلد ات ولا تبلد بیشتر بدانیم حافظ حافظ شاعر قزل سرای قرن هجری است که دیوان او نزدیک به 500 قزل دارد. حافظ در شیراز میزیست و در همان شهر نیز درگذشت. قزل، شعری مرکب از معمولاً 7 تا دوازده بیت هم وزن و همقافیه که دو مصرای بیت اول آن همقافیه باشند. مضامین قزل غالباً عاشقانه است. یکی از قزلیات حافظ روز وصل دوستداران یاد باد. یاد بادان روزگاران یاد باد کامم از تلخی غم چون زهر گشت بانگ نوش شاد خاران، یاد باد گرچه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد این زمان در کس وفاداری نماند زان وفاداران و یاران یاد باد مبتلا گشتم در این بند و بلا کوشش آن حق یاد باد گرچه صد رود است در چشمم مدام زند رود و باغ کاران یاد باد راز حافظ بعد از این ناگفته ماند ای دریق آراز داران یاد باد ایران را بهتر بشناسیم آرامگاه حافظ آرامگاه حافظ یا حافظیه در شیراز هر روزه جهانگردان زیادی چه ایرانی چه غیر ایرانی از حافظیه بازدید می کنند ایرانیان اغلب سر خاک این شاعر بزرگ از اشعار وی میخوانند دیوان حافظ یعنی مجموعه اشعارش یکی از پرفروشترین کتاب کتابهای فارسی است و نسخه از آن در اکثر خانه ها در ایران پیدا می شود